راژیو فیلم زن جوونیک تو زیر زمینه یک خونه ی خشتی قدیمه بچه شیر شیرخورش رو با آغوش گرفته و سعی میکنه نوزاد رو آروم کنه همسایه همسایه مهمون نمیخواد یالا پیر مرد مهربون همسایه در حالی که ویولایی رو دست داره به داخل عشاند. خونه نفت چی پسری خدا حفظش کنه روی یه سندلی زباردر رفته میشینه زن جوون یعنی همون مادر کوروش پیشونی بچه رو میبوس و عشق میریز و کروش کوچولو رو تو بقل تا بوده گریه میکنی خدا هدیه سالم بهت داده که رفیق تنهایید بشه وقتی رو گریه میکنی نمیدونم چطوری بزرگش کنم بدون پدر باسته نخب خودش داده خودشم کمکت میکنه بزرگش کنی یه آرزو براش بکن امروز ترش دعا مهمونتن مادر کروش کوچولو رو میاره بالا روبروی صورتش رو دعا میکنه بی کسی سخته آرزو میکنم محبت پسرم تو دل همه جا بگیره تا هیچ وقت تنها نمونه سوپر استار. بازیگران شهاب حسینی در نقش کوروش زن، فتانه ملک محمدی در نقش رها، فریبا کوزری در نقش مادر کوروش، نسلیه مغانرو در نقش شهلا افسانه بایگان در نقش مسئول پرورشگاه، محمد رضا شریفینیا در نقش کارگردان و رضا رشیدکوم در نقش سیام. ساز نااسب چشمازه تهیه کننده محمد نیکبی نویسنده و کارگردان تمین میداد انواع پوسترهای های تبریقاتی کوروش زند دیده میشه. جمعی از کارگرها با لباس فرم کارگاه جمع شدن و کوروش زند به نمایندگی از اونها فریاد میزن و اعتراض میکنه. ما حقمون رو میخوایم. راحت خدا خدا میکشیم. خدام حق. راحت خب استراحت میکنیم بعد ادامه میدیم. کوروش که از دادن کارگران شاکیه از جمع جدا میشه و به پشت صحنه میره. بعد چوا؟ دوباره میگیریم سه باره میگیریم باباش سرویسمون کرد دست کارگردان سیامک کارگردان رو آروم میکنه و به سمت زند میره کوروش دوباره میگیریم بابا. بلم که اصلاً اصلاً ندارم ها. عکسشون هم 10 که وقت اومدی بکن. بگو مامانم مریض بود. بگو ماشینم خراب نبودن کار کردم. میکنه. با چی کار ببین یه سناریو داره. تو، تو ایس بابا. پشت حصارهای محله فیلمبرداری، جمع شدن و بین جمعیت دختر نوجوانی با دوربین عکاسی از خورش عکس. یکیشون اون رو سر سیاهه دیگه دختر لبخندی زن و کروش از لبخند دوخره عخری لب پیدا میکنه جوون روزنامه نگاری سعی میکنه گزارش حالات کوروش رو بنویسه کوروش سیگاری به لب میذاره اما دستیار سیگار از لب کروش بر میداره ایجالتکش رو بچه هست سیگارم م میون اولا به تو مربوط نیست دو با من همه بچه های یه بزرگ میشنن من عکس باز چی میگیرم؟ اگه اینجا صاب نداره حالا عکس بابا شاید با اسپانسر اومده بهش بیا عکس نگیره بفر تصریح قضیه رو در بفر کام بفر فلان تکرار میشه, میشه. کار داری چی گفته تکرار آه. میشه چرا سر به سر این بوقخیزاری آخه همین میشه تکرار میشه ولش کنیم بابا اه گیرین با شوت گیرین به جان کوروش میفته اما کوروش اونو به کناری پس میکنه چند دفعه گفتم وقتی من کار دارم این دختر سر صحنه نباشه آها موج صحنه از فیلم اخراج کنیم خیلی خوبه داره. هر موج منفیه به من حس بد میده موج معدیه ول نذار ما در داداش باش حتما مکان بلان تکرار میشه بفهم می سر صحنه کوروش متوجه روزنامه نگار میشه و برگه‌هاشو از دستش میخافه چی داریم مینیسیم بابا خدا بابا در چی داری می آخ... سر درشت... چی طور می من... خلال... داری داری؟ من... داده ببینم یه چایی باخور من میرم دیگه همینجوری رو روبات همه تکلیف رو میکنید، میکنی میکنید. بلمکم بابا. سیامک وارد وقت نمیشه و میاد سراغ کوروش. کوروش، داری چیکار میکنی؟ لباسا رو میکنم، اینو میبینین؟ سلام. عرق کولاونه. کیا ورده؟ یه خانم. خب، دستور میز. پشت میز گیریم میشینی تا گریمور گریمش رو پاک کنه. نه نه، اصلاً. سیرمون شد. بزن جونی کار داریم میخوام بریم. برو بریم. فیل پاک نکن. یم، سیل میشیمز ور بلاسینا. 5 تا فقط فاجات خوردی، هنوزم سرج. بچا. بیر مور همون‌ها رو تنها مگه. چی میگی بر؟ قاپو دا باله. قاپو دا چیه من کار دارم، باید برم. الان تکرار میشه گروش. هی خود. من میذارم گیرش کجاست دیگه. حال میکنه این حرکت بده. من کتک بخورم دلش گرمش کنه. ايش بگو؟ زرش واه هیچوکی. بخش سکته کنه؟ وا کنه. جهنم. روشن تک نمای بیمه کم تزه اصلا روز بازی نمیام فقط یه پلار دیگه یه پلان موندی این فلان رو فلان اصلا آقا نمیتونم حال ندارم خستم اعصاب تو با کارگردان این پروژه اشکال میدونه ندارم آها شما بابا آرومتر اسپانسر فیلم اومد اینجا دختر پسر شما ورده برگرد فقط که نمویشو برگرد این اعصابشون حال بده پسر ازش بشو الو کی سلام مامان که صففداری می‌کنین؟ کارگر صحنه با یه تازه مگه چه نکن پول دست به از کیفش پول پرت میکنه پشت سر چی تا یه خالی میکنین؟ تو چته؟ یه نگاه به خود تو بعد مخ هات داره میریزه هزار تا چهره اومده تو سینما اگه گرسنه اگه کی کی از ما گفتن هر جنو میلته میرم اینو بزنی با چاک صدا بچه‌ها بیا آقای سلام آقای رسول بفرمایید بفرمید خوشوقتم سلام سلام حالتون چطوره حفظتون حفظ سلام آقای رسولی عزیز پسر نازنینشون دختر خانومشون قابل شما نذاره آقای مرسی مرسی مرسی لباس پیشن شما خیلی خوشم میاد به نمیتونم کمکتون کنم خیاطتا متاسف سکته زد م خدا هم شما هم بیامقا آقای... آ آقای... رستولی آقای... اون یکی دختر خانم بهتون کجا من دختر خا دیگه ندارسم چرا داری اون که پیشتون باعث ب بود دکتر کوچوله رو سر سیاهه همون اشتباه؟ اشت رئیس ص می کارگردان میش رو شو آماده و آمادهی برداشت میشه سیامکم خودش رو به گروه کارگردانی من بودیم، هم عصبی بودیم. شروعی، دنیم ازدالد. یه سلام سلامت ولش. سلامت ولش. چون اما گا؟ سخت بود، خسته اگه میشه بذاره میشه, میشه یا نمیشه به من مربوط میشه ببین اگه اتفاراش تموم شده ببین گیریمشو تجدید کنه بیار نه اتفار چه؟ منتحل نکن بابا واق. خب بگیم بیاد دیگه یعنی چی خسته اسما سر بچه هاش از کروش خدافزی میکنه و سیامک خودش رو دوباره به کروش میرسوند خیلی متشکرم. که کردی؟ داشتا ببخشید تان خدا برزت همی خواده خدا نگهتر شما چی کار چه هستی ب یافی دختری که بود نه دختری که رفته بود از هر که همی کرسسته نیمی از کجا آمده بود درک کروش کجا؟ دوتا پیلا میشتر نموده راه نهاره دوتا پیلا بارو کنار برم کنار که چی بشه میخوام برم ببینم دختری کی بود توفیه هم نبود به تو مربود نیست کروش یامک رو کنار میزنه و راه نهاره ببخشید خدای شوره طرفدار های دور ماشینش میدو و اونا همراهی میکردن. کوروش با به راهش ادامه میدید. یهو کوروشlambda در, در ورودی چیزیش به دخترکی که ازش عکاسی میکرد میافت. دختره چند قدمی پشت ماشین کوروش میدوه که مسئول حراست صحنه اونو از ماشین کوروش میبره. حَم سیامک به استقبال کوروش میاد. کوروش باز بیرون میاد بابا؟ آه. چه میدونه که این جور مواقع چه جواب تو میده؟ سربیت بگار اینجا ممنوع با کارت بزنی خونش در نمیاد تو کیدیم تفت سو به الان 12 است خب عقل داره چنانم یاد میگیره به بازیگرش احترام بذار اون احترام میذاره عزیزم تو توقع دیگه خیلی زیاده عکس اشتراک کورکن نازنا رو من آوردم بله رستورانی که گفتم بله بگم بیارن اتاق گریم شرم نگیر بابا بی قرق عکس دماغم من به چه درد تا میخوره برو یه من کیپشو بندازینش کرد. اوکی کُروش پشت میز گریم نشسته و مشغول تنبین دیالوگ هاشه کار داری تو صحنه شما تازه از زندون آزاد شدی. باید یه خورده موهاتونو کوتاه کنی. دستت رو کش ببینم. دست به موهای من بزنی من میدونم تو. تو قرار داده من قید شده. طراحی موهای من فقط در انحصار میکاپ آرتیست یه کمپانی اینترنشناله که من مدلشم. فهمیدی؟ نفهمیدم. من زنگ میزنم به طراح. و هر کی دلش خواه الان اومده میشه. خداحافظ. چی؟ چه شو لباساتو چی شده؟ تو بگو شیشو شیشو شد. شد. دختران آوردی تو؟ بابا و ژیوز دادی داد؟ نه آوردی تو؟ ژیوز دادی؟ فرشی شیشه ده؟ گوشی. پس یه چون نمیذارم ماشینو کوتا کنی، اینجوری که نمیشه. آباد رسمی یه آبا خوب اینجوری که نمیشه یارو داره سکته میکنه شورشو در بردی. تو بگو بی خیال ما هم امشب سیکته نکنه تی کردیم اصلاً. کجا؟ نرو با ساخی تو حیاته. ساکی با تلفنش مشغول و کورش مخفیانه از پشت سرش سای میکنه ژیمزه. آغوره شده. فرار داشتم. کوروش به دست اشاره میکنه تا جوون ساکت شد تا اون فرار کنه. کوروش خودشو به ماشینش میرسینه. کارگردان متوجه قصد کوروش برای خروج میشه. یمام. کوروشم دنگر عقب صحنه رو ترک میکنه. دوربین وقت که دخترک اکاس با کیف ویولان و کوله پشتی که به دوش داره هدم زنان داره محبتی فیلم رو ترک میکنه کروش متوجه دخترک میشه جلو پای دخترک ترمز میسه سلام خانم جربان دخترک سوار ماشین شاسی بلند کوروش شده و به اون خیره نگاه میکنه از من چی میخوایی؟ هیچی هیچی؟ هیچی که نمیشه بلاخره لاباک یه چیزی میخوایی دیگه نه؟ عکسی، امضایی یادگاری؟ آره دیگه، امضا میخوام ما امضا کنیم، بریمتی برای رها دو ای رو به پروش میده اسمت رها؟ بله اونه که اسمان برات امضا رو کنم، رها جا بگو از من چی میخوای؟ چی؟ کجا داشتی میرفتی؟ یک جا. جا که نمیشه بالاخره یک جا جایی دوست داری برید که کجا میخوایی برید هر جا به میل شماست. اه آها ماشین کوروش به کوچه میرسه و پارک میکنه اما کوروش با دیدن یه ماشین کرسی مدل بالا می به روی فرمون ماشین و شاکی از حضور ماشین عقب میکره تو از اونجا دور یه دقیقه بشینی تو ماشین تا برم یه موظرم درک کنم بیان باشه باشه در واحد باز میشه و کروش میاد به داخل ساختمون کروش توی ساختمون که خیلی شیکه و به شکل مدرن هم موبله شده قدم میزن مرش بی تفاوت از کنار ساگی رد میشه تجا بیم کنیز این سرست نه میره سراغ کمود لباس ها تا لباس هاش رو عوض کنیم خیلی بیشتر بوده کار دارم خواهم برم پیشو پیر زنه معلوم هسته کجایی؟ جل روز میبینی که برشی زیاد تلفن نمونه میبینی سه سحنه بوده سه تا برای پیغام دارم یازده تا گرفتارم رفتار کی به خودم مربوطه. تو می‌گی من چه خوره افتاده تو زندگی من با من اینجوری حرف نمیزدی. حالا که حرف نمیزدم. زندگیمو نابود کردی می‌فهمی؟ کلی آغاتمون زندگی رو ندادستی. به من رحمی نداره. تو نمی‌گفتی شب و روز به فکر منی؟ آره خوب عشب کابوس می‌دیدم. تو شخصا الان هم می‌بینی. همه یه دوزین می‌گیره. البته شبات انتقام میگیرم. آخه تو کی می‌خوای مسخره بازی رو تموم کنی؟ چرا رفتو کوچیک میکنه؟ خب دوستت ندارم. چه جوری می‌خوای انتقام بگیری؟ باز می‌خواد بزنی شیشه خونهمو بشکونی؟ رو ماشینم روغن ترمز بریزی یا پنچرش کنی؟ ها؟ این دفعه دیگه نه. می‌کشنت. تو دیوونم کردی. بگیر. بگیر بکش. کوروش شاقی میوه‌خوری رو میگیر سمت ساخه. آرزو میگه راحتام کنه. بگیر. بگیر. ها حتای زیادی. ساخی رو از کوروش میگیره و میذاره روی میز. کوروش هم مجله‌ای رو جلوی باز می‌کنه که رو جلش عکس خودش نقش بسته. می‌خوام ببینم اون صورت شیطونی‌ش رو ببینم. همون صورتی که میپرسیدام، همون صورتی که مثل بچه‌ها معصوم بود. اینو تو نیستم. آره آره خجالت جلد نکش خوب تماشا کن این همون صورت معصومه که تو از رفیق سمیمی دزدیدی ولی من چه میدونم آقایی کوروش من کد کجا هستن من چه میدونم شنو موبیلشون جواب نمیدن نه خیلی من با ایشون هیچ ایش نسبتی ندارم ارز کردم من ایشون رو نمیبینم کروش چرا خدا با من این کار نکن. ندارم اینقدر منو عذاب ندارم شب و روزن شده فکرتو قرارم شده متن تلخ شنیدن از اینو که میدونی کوروش کجاست؟ به تو چی؟ کوروش ساری با آشپزونهش میزنه و به بی محلی‌هاش اعدامه میده. خوشم نگرانتم. خوش خب ساغلا مو تو سعی همسن خودت آل می‌کردی. اون وقت دلم نمی‌سوخت. تو فاسدی. آه. سرما خوردی؟ به مزخرفات آلرژی پیدا کردم. ساقی گرجون خونی کوروش رو تعارف کرد. مرا تو. کوروش در رو برای دختره که خودش رو رها معرفی کرده باز می‌کنه و اون رو دعوت می‌کنه به داخل آپارتمون. قرب بشین راحت باش. کوروش پیغام گیری تلفنش رو چک می‌کنه. بابا قربونی پیغام می‌گسنی. آلا کوروش. بابا 110 شد کجایی آخه؟ الو کوروش سلام عزیزم نیستی؟ موبایلت خاموش بود زنگ بزنید ها متحیر به خونه و اساسی منزل کروش نداخت میدونید بلی یه زنگ به من بزن الو کوروش من تا رزید سمتو بذاشتم کنا یه سری به من بزن سلام آزند از مجله آشپزی آسان مزایم شدم تشریف ندارین؟ خواننده ها میگذارم بدونن که شما به چه غذای علاق مندین گوشیه بردار گوشیه بردار لنه آلو، آلو، الو آقا آلو الو کروش زنگ بزن سارا الو آقای زنگ پیشونو برمیداریم دختر شروع میکنه به عکس گرفتن از عکس‌های های روی دیوار که عکس‌های های چند متری کروشه و همینطور عکس گرفتن است الو آره بیا تا آینه کی زود زود میپیچا کوروش هم تو نوشیدنی آب سال بابا شبیه. کوروش با دیدن چهره گیرها چه به این مبهم رو به یاد میاره شب تن... میبینم خداحافظ کوروش نوشیدنی رو به سمت رها میکنه منو دوست داری نه آره دیگه چی هست مجنون دوست داری مجنون خب علیکیه نه مرسی من مجنون دوست دارم رها دست کوروش رو پس میزنه باشه نذر میشه کنسول بچه بازی ندارم باشه ببینم وقت خونتون ببینم صبرم ببینم که چه انزه بگیری خداحافظ نه فقط این که نه من یه کاری باهاتون داشتم خب خب بخیلی طوری که نمیشه یکم سخته یا من چی میگی کچلم کردی مریضم بابا نمیتونم بیام خداحافظ کورش <تصفح> بارونی چnlmش رو میبوشه و در رو برای رفتن رها باز میکنه برو دختر دخترجم برو بشین سر درس و مشق بیخودی وقت ما رو هم نگیر من هزار کار دارم خوش بگذره خداحافظ شب شده و کروش همراه یه خانم جوون وارد راه پله یه آپارتمانش میشه هم دیگه پشتلارشون سمزنش این دیگه که سر برمیگردونه و رها رو میبینه که روی پله ها در حالی که ویولونش رو بغل گرفته به خواب رفتی چه میدارم؟ بابا بیو از آشقای تو بارو بابا گناه داره تا صبح یخ میزنه چی کارش کنم؟ یا زنی مزن تو. نجواس چه هستی؟ داری اونجا می‌دی؟ بخواب کروش متنایی که بعد ترجمه کنم کجا؟ اتاق. ساب که پاشیدم می‌خوام نمیرمت. راشنه. کروش تختخوابی به رهام ده و راهنماییش میکنه تا روی کاناپه اتاقش بخوابه. بذار ببینم این تو چی داری؟ کیف رها رو میگیره کروش. <تصف> ایست بابا، من نمی‌دونم کیه. رها هم با دست دود سیگار کروش رو از خودش دور می‌کنه. تیس رو خالی کنه روی کاناپه. توی کیف یه سری کتاب و چندتایی عروسکه به همراهی یه جعبه موسیقی کروش جعبه موسیقی رو برمیده صبح شده و کروش خواب زده به سمت یخچال میره الو سارا سوشو ادا خوابی سارا مشغول نقاشی روی یه بومه و جواب تلفن کوروش رو میده الو نا نه بیدارم چه سری؟ خوبم چه اگر این وقت این جواده ما کردی؟ دختره نیست خب کم کن سده اون ضبط رو بشنوی چی میگم میگم دختره نیست رفته بگو چی میگی؟ میگم دختره نیست رفته خب خودت ازش خواستی بره آره خب ولی ندیدیش؟ چرا؟ نصف شب داشتم می ازم خواهش کرد یا برس کنم آژانس. یه آجانس یا بذارم اشتم تمینادیمون منم گذاشتم اشتم آژانس. مگه چیزی شده؟ ایچی کروشم یه لیوان آب می اون و نگرام به نظر می رسی شب برزاد می باشه اگه اومدم راجبه این موضوع نمی خلاص خلاصه شطور دیدی ندیدی مطمئن باش منو که می اما آمان به منزل ماد مامان آقای تابان که همون پیرمرد مهربون همسایه است، بودی موبنش نشسته. مامان سلام سلام ای سلام علیکم آقای تابان سلام بزره, بزره شمایدین حالا شما ستاره بفرم بفرش که چه جب یاده مادرت کردی مادر باش بس نه نها لوگیا پالو داشتین باس من چیزی مونده برای تو گریز پای من همیشه همیشه و همیشه پیارو بخوریم که گوش نگیم چو خوبین؟ فروش میشینه روی رو می ما به روی آقای تابا. بد نیستم. ماشالله اصلا تکون نخوردینم. خیلی بخته ندیگمت. گرفتاریا دیگه. الله شما خاطرات خوب زیاد دار. از اون زیردنی. یادش بخیر. از رچگی روی چهارپایه میشستی و من برایت ویالون می‌ذادم. یادت هست؟ آره. می گفتی عمو رحمت. با ویالون میزنی هزار تا فرشته تو اتاق پرواز میکن. <تصفح> همین <انه> بود؟ <تصفح> یادته ها ای یه وقت دلتنگ شدی من هنوزم تون زیر زمین هم همسوز هم همسوز میزمم ای بابا آقای تابان این گولی که شما واسش گریه میکنی مردی توش نیست بس کن ما مخواهش میکنم مادر با نوشیدنی و قدر خوراکی برمیکن ببینی آقای تابان همه جور امکانات اوبرد در اختیارش من هر کاری بتونم براش میکنم فقط غر میزنه کی میخوای مامان من بگم یه برنامه سر جاشه خونه خوب ماشین خوب چه میدونم استاکسونا پدیکور مانیکور فروش بس کن اینقدر مهنت سر من نظر. هر کسی ندونه آقای تابون میدونه من دستتو چی میکشم اه اصلا غلط کردم یادت کردم دلم گرفته بود خیلی سرم گفتم بیام پیش دلم باشه ببخشید آقای تابون فروش کتشو به دوش میذاره و اتاق رو ترک میکنه بله سلام آیزان بفرمایید سروان شاه مرادی هستم از پاسگاه پلیس ترمینال جنوب تماس میگیرم یه دختر خانومی اینجاست به نام رها عزیمی قصد سفر به اصفهان داره حرف نمیزنه ولی ما تو دوربینش عکس‌های شما رو دیدیم فکر کردیم که شاید نسبتی با شما داشته باشه یا شما بشناسیدش لطف کردین تماس گرفتین جناب سروان به تا یک ساعت دیگه سعی می‌کنم خدمت برسیم خوشحال میشم که از نزدیک زیارتتون کنم خداحافظ. کوروش دوباره برمیگرده به سمت مادر. مامان مادر هم سوار ماشین کوروش شده و با هم آزمه‌ی جایی هستن. چه باز؟ قنبرک زدیم. ساکت شد. مامان حرف نزن. دیگه همین‌طور کنده برو جلوی آقای تابار آبروی منو ببری. از سر دولت هم یه دوست دارم کوروش آینه این ماشین رو میچرخونه سمت مادرش. آقا مامان من، عزیز من، اون‌ها دوستای درس حسابی بودن؟ نبودن دیگه، کلاس داشتن؟ نه، نداشتن. ادل آقای تابانم یجیوی دارم یاره. آره. گوشتایی تو بچه داشت. اگه خدایی نگای مانسپای او خویت بنداز سر باز تو نی. آره حذف میکنی. شدی منی خاله ایونا. بعد. ایونا. سر باز ما عوض کردی. گفتی کلاس نداره. مهر دم عوض کردی. گفتی آبرون میره. من احمقم گوش کردم. حالا چه اتفاق مهمی افتاده که به خاطرش جلو آقای تابان یجیوی آبرون ماره بودی؟ کوروش ماشین تو پارکینگ شلوغ پارک میکنه و با مادر لری خالون تر میشه. کروش نشسته کنار سروانه کلانتری و سروانه کلانتری هم با خوشحالی و لبخند به کروش زند و حرفاش توجه میکنه خب پس اینطوریه تا به میگن بالا چه شده ابروشو آرکوله میکنه مخاط بذاره به مگه من چی گفتم رها جان گفتم می میخوام مراعات حجابت اینا رو بکن دختر خالمه با مادرم حرفش شده میخواسته مثلا غر کنه باشه بره شهر استانوش من باز عکسای توی دوربینش فهمیدم که نسبتی با شما داره دختر خیلی خوبیه چه خوبه پس خب پاسپورتت رو ما مرخص میشه. پاشا گفتن که زبی نگران اون. ها او کوروش. اگر اشکالی نداره بچه‌ها می‌خوان یک سری دسته جمعی شما بگیرن. با کمال میل خیلی ممنون. هر سه ماشین در حال برگشتن به منزل هستن. برای چیکارش کنیم؟ کجا میخوای ببریش؟ ببین دخترم، پسر من اونجوری که تو می بینی نیست. پسر من از ماما خواهش می‌کنه. نگران نباشید. موضوع طوری که شما فکر می‌کنی نیست. خدا کنه. سرشو من من کله میشم. اومدم آگرد میرسونم دی آژانس. دوست ندارم بری کنار خیابون برای تاکسی وایسی. ماشین کروش گشتی تو شهر میزنه و حالا رها کروش تنها تو ماشین نشسته. خب کجا داشتی میرفتی؟ شهر اصفهان. اونجا چرا؟ خب اونجا زندگی میکنم دیگه. خب پس اینجا چیکار می‌کنی؟ خب اومدم شما رو ببینم. منو ببینی که مثلا چی بشه؟ به کردی من کیه؟ چراقدر ساده این شما؟بشید آ ولی شما که نمیدونی من برای چی مذاحمتون؟ میدونم دیگه میدونم تو کلی رویایتون چی میذاره همهتون ع این همین. عجیبه. همین شاید در مورد شما درسته. شما خیلی آدم خودخواهی هست. خودخواه درستبی؟ <تصفح> نلبات میدونن اینجاایی؟نا که در این میدونه.ه اونم اجازه از گفت برو؟ بله حتی اصرار داشت روک و پوسکنده ببینم حرف حصابه چیه کجا میخوای بری؟ خونه کدوم خونه؟ خونمون دیگه خونمون؟ خب باره دیگه قاطی داری بچه بچه خونمون کجاست؟ مگه همینو نمیخوای؟ خب برو دیگه برم که چی بشه؟ که من یه چیزی به شما بگم که فقط یه چیزی بگی؟ خب همینجا بگو یا همینجا بگو یا پیاده برو خب اگه اینطوری میخواین باشه من دختر مهنازم مهناز کی مهناز ارجمندی خب به من چه خب من دختر تو هم دیگه چی دختر تو مهناز زهرا ایکس خودش رو به همراه زنی به کوروش میده کوروش رفته شده و یک خورده که نور خیابون ماشینش رو پارک می‌کنه کوروش متحیر و عصبی محفت هموشای عکس محناز رو رها میشه امکان نداره چرا امکان داره؟ من و محناز از شور اون بچه خلاص شدیم میگم امکان نداره که تو رو پرسته بود هیچگی... از من چی میخوایم؟ که از هم کن کوروش <تصفح> عصبانی در رو برای رها باز میکنه یاده پیادشو برو جلا اونی که این دامو بر من گذاشته تلات ناقصی از زندگی من داشته محنات اون بچه رو انداخ من مطمئنم فهمیدی؟ فمیدی, فمیدی؟ باشه چرا داد میزنی خب بگو منو نمیخواد؟ آره نمیخوای پیادشو گورتو گم کن بارو پیش ناپدرید یا هر خر دیگهی که دلت میخوای بگو نمخمو نگره بگو طرف این قدم ببونه بود بادو خب که پول ندارم برگردم پسی پول لاشدم دادم بلیت و اوتوبوس اونا من فیاده کردن منو بر ترمینال یه بلیت باستم بخر وایسته تا سبرم کنه باشه در ببن کروش زهن راهی ترمینال بشه راه داخل اوتوبوس نشسته و کروش هم سفارش راها را به راننده ای اوتوبوس میکنه سفار دو دست شما ما بازهش باشه افران فوری که دیجا نمونه آقا خود <تصال> کروش با دودلی نگاهی به اتوبوس راهی شده میندازه و از بین جمعیت که دورش حلقه زدن به خاطر مشهوریتش رای میشه توی ماشین هنوز ذهن کوروش مشغول رها و حرف آستا، آنای잖아. <متضح> الو، نوشین سی، خودام زنگ پنجمین بارم دارم به زنگ میزنم گوشیو بردار. با توام گوشیو بابا. سلام آقای زن، صداوار یک شکایت از شما به خانه اومده در مورد فیلم <متضح> <متضح> <متضح> جدیدتون، به من رنگ داره. سلام بله کوروش های این گوشی رو بردار مرکوز به قسمت خونه کروش حالو بگو سلام اومد پسن سلام هنی خبی. عزیز دلم امشب کالم نزاری یا تطمان بیا چک خونه چی شد گرگونت برم الایی اون که امروز پاس شد سه تا چک دیگه مونده اگه امشب بیای یکی هم پاس میشه دیده که برای من خیلی مهمده سوالتو می گفت من از عبدی خریدی آره بد کردم عزیز دلم می خواست پیم دازدت زنده برو من تو رو خوب می شنستم نقشت چیه؟ می کنم بعد قطع کردن گوشی باز هم سیگاری آتیش می زنید از کلافگی فکر و خیالاتش دیگه نمی تونه به رانندگی ادامه بده پاره همین وسط اتوبان نگاه می‌داره و از ماشینش پیاده می‌شه و به سیگار کشیدنش ادامه میده. آلو خورش کجای بابا حنم منتظرن. Kuruj, به ببین ما آماده‌ای ما نورم دادی منتظرتیم. تیم. اگه مرده باشی کونی من داشته باشم. پسر پیشور. بعد چند لحظه میه به سمت دربرگردونه میتونه. شف شده و کروش با ماشینش توی جاده‌ای بین شهر اتوبوسی که رها سوار اون بوده رسیده به یه مسافرخونه بین راهی و کروش هم کنار اتوبوس ماشینش رو پارک کرد. خلاص. کروش به داخل اتوبوس میره و رها رو میبینه که به خواب رفته. در حالی که عکس خودش و مهناز رو به بغل گرفته و البته کنار این عکس عکس تکیه کروش هم است کروش به احسان نگاه مندرسه مادر مشغول بافدنیه و کروش هم مثل اسفند روی آتیش اینور اونور میره و قدم میزنه اینور راه نرو احسابم خوب شد یه بار خواستی در حقم مادری یه کاری واسم انجام بدی گنگ زدی رفته کارش یه بار؟ میدین تالا چند بار گنگ کاری تو ماستمالی کردم؟ تازشم من که توتاق دکتر نبودم بدیرم محناز بهش چی گفته؟ این دفعه بافت هم همیه. چی باز خود همیچی رویش. بافت باید بکنه. میله بافتانی های مادر رو به کناری پرت میکنه و میشین رو به روی مادر. میدونی چهون دختر واقعاً دختر من باشه چه افتزایی به بال میاد؟ هیچ افتزایی. من سوایی نبی میشم، تام سوایی بچه. میشه فدایی که با دخترش 12 سال اختلاف داره؟ بعدم نیست. دور بعد پول میشه دخترش 12 ساله. مامان سر سر من نه درم، سر من نه به جهان نه. مادر باز هم به بافتنش ادامه میده. به هر صلاح نیست مخاطتونیتو بمونه. اگه بعد پاپوش درست کرده باشم بعد گمون تمام میشه. هر چیز دو تا بهش آلمانش ژنتیک دی ان ای. کلا حرفای آلمی سطح بالا میزنید. ازش پرسیدی مهناز کجاست؟ چند وقت پیش مرد. سرطان داشت. یعنی قد از اینکه به منو در تعریف کردم که بود که شما چی پیش اومده؟ طبقاش 16 سالنده. خب اون به خاطر همین هیچ وقت موزهنته نشد. ولی وقتی فهمید داره میمیره گفت که من باید بزنم پدر واقعی کیه توی همه سال کجا بود؟ خب وقتی تو تنها گذاشتیش من فقط یه علیت بچه بودم چگاه خب من میزن شهرستانی بود نه خب خب به خاطر همین وقتی فهمید حامل است گذاشت رفت شهرشون زنگ مزاهمه تو نشه اونجا هم با یه نوزنده که تقریبا همسن باباش بود ازدواج کرد ناپدری ما میگم اسمش علیه اول فکر کردم پدرمه خیلی مرد خوبیه ماه مهربون اگه بیبینی عاشقش میشی طرف بس بگم چه سیگار میکشی بچه تو کار بزرگتر تو فوزیلی نکن از رو علاقه گفتم بله خیلی تو پدرمی، باید موزد باشم یا نه؟ من پدر تو نیستم قبیلی، این همش دروغه، دامه، توته است مادرم مطمئنه که... نمید های آیزن. آیزن از بونگای لواسون تماس مگیرم، پس که تشیف گیری بای من اصلا قرارم یادم رفت زد یارده شدا. پاشا کوروش به سرش میکوبم میره تا به قرارش برسه. پاشا باید بره تو محمد خونه مادرام. پاشا. می‌سازم خانوم؟ خب بذار همینجا بمونن که قول میدن دست به چی نزدن. نه نمیشه. اینجا برای تو مناسب نیست. یک دو من با هیچ دنی زیره سخت زندگی نمیکنم حتی اگه عاشقش باشم. اون طالبی غلری نداره. تو بهش تنجله بدی. کوروش نمیدونم ماکسی میکنه اون نگاهی به ساعتش میندازه. کوروش آره کجایی آخه کیفره ها رو بهش برمیگردون هیچ تلفنی رو جواب نمید در رو هیچ کس باز نمی کنی کارت داشتم زنگ میزنم صدات صداد میکنم گوشی رو برداری شد سیرا علا کروش گوشی رو بردار باز کار واجبی دارم آمر کمرت گرم تموم میشه میگم گوشی رو بردارم یک کاری نکنید سن من بالا بیا بله بفرماییم شهلا با شنیدن صدای رها مترجع میشه و یکی میخوره کنم اشتباه گرفتم پس بهتر آوزخای کاری نگوشی گوشیو بذارین منزل آقای زن بله همینجاست تو کی هستی بهتر شما اول خودتون رو معرفی کنیم یعنی چه من یکی از دستای کروشم شهلا حسابی از کوره در میره و میتوبه به رها کوروش کجاست تا از نمیگم. گفتم کروش کجاست؟ گوشی رو بده بهش نمیتونم باسه چی؟ آخر رفته بیرون ره مشغول تلفونه که کروش خواب زده و خوابالود از اتاق خوابش میاد بیرون بعدم به دنگه صبح خیلی؟ چه خبره اینجا؟ اکسایی روی دیوار با تابلوهای تقریبا کدکانه عباسید چی خورش به سراغ آیفون میره و سیامک رو پشت آیفون میبینه منو چرا رو دیوار برداشتیم؟ خب نمیخواستم هرکی بیاد خونه آفه کنی چه بابای خود خواهی دارم تو کار زندگی نداری اول صبح بزرگ؟ بازدار برو تو ساخنه سیامه با کلی کاغذ و مدرک و گوشی به گوش وارد آپارتمان میشه. کوروش هم مشغول چه کردن پیغام هایی تلفنی شد. پیغام بگذار. ماما. با من صبح سر. فیلم بردار هم با؟ تو گفته ایم نه و خدا. سلام. آقای کوروش سه هفته. سلام. سیامه که سیریش دمیدار بوده. فعال نمیداری راستی؟ <تصح> مستقی ها در مستاوی ها رو گشت میکنی به بحبه خوستله ندارده سرم درد میکنه حرف تو دزن حرفم گندشو درآوردی رفت دردش شکایت کرده میفهمی میدونی میدونی به دو چی جد... من رفیقه تم نگرانه تم خواب یه جوری حلش کنم کروش لیوانی برمیداره تا برا و سیامت آب میوه کنه رفیقی بهش بگو نمیتونه بیاد افتاده پا شکسته برو بهش بگو حال روزش افاقیه بهش بگو حال نداره برو بهش بگو با من قرار سلام ب... سلام علیکم سیامک تازه سیگار رو از لبای پروش برداشته با شنیدن صدای رها یکه میخونه الان براتون چایی براتون خوبه رها سراخه سموگر چای میخونه آره پروشم پروش اصبالی این سیگار دیگه رو آ کی بیرون ها کی بر تو نگاه رها دلخو رو ناراحت برمیگرده به اتاقش گرفتاری تیم بچه‌سام قفس یامک هست این بچه‌س به نظر پولدارم نمیاد وقتی چیزی نمی دونی راجاش فلسفه نبا بوتنفرم از این نگاه‌های تو پس امروز بیام باشه مطمئن؟ دو روز. سعیت همیار؟ دو روز. همیار امروز. حوصله خود تو اون کارگردانه درپیته تو اون؟ هندهک. پروژه آشغال سین میتونه نادرم. برو ببینم نم؟ دو روز. شنید نه؟ آماده نیستی؟ پلی. یه منطقه بزن از کیبرس می نم. البته. پجاه. میخوام بره. کروش بیرون هدایت می کند. جای هم واسایلشو جمع می کنه و پشت سیامک به راه میافته. ساکن ببینه. شرایط هستن یا تو. آدم حرف به زنی امروز هم نمیام خدا بیرون میره اما کروش باز اونو برمیگرد فساد خانم میگم بالا ششه در رویه شار کنه میکنه را آها جایی میخوای بریادی زن خودم میبرم میرستونمه من اصلا اینجا راحت نیستم تو همش به من توهین میکنی خونه خونتم خیلی است. من اصلا نمیتونم نفس بکشم خیلی سیگار میکشی خیلی خوب ببخشید اینم از سیگار راضی شدی؟ امر دیگه پنجرورم میتونم باز کنن رها پرده رو میکشه و دستی به سرابوش خونه می‌کشه. برای کبوترهای روی سک و دونه میکشه این باش بس کنه میوهها رو میشوده گلدونو پر از سنبل میکنه و نیز سبحان رو میشینه سازش و کوک میکنه شروع به نواختن همون بیرون چی کار داری میکنی؟ معلومه بعد گشتی پشت میز صبحانه میشه میخوای همسایه ها ببینن؟ خب ببینن دارم ساز میزنم شخطر من خیلی سرم یه سوپرسترم الان پشت هر کنم از این پنجره ها ممکنه یه اکاس و خبرنگار رو فرزون نشسته باشه بایی بکرسیم رو اینترنت؟ خب نشسته باز ما که کار بد بعد میمکنم میفه در دفترم که میخوام صبحانه بخورم بس میگه میخوایم صابونه بخوریم به ازور بایی خواهی شد از کجا آوردیم زن زدم از سوپر محلمون آوردن هیچی تو خونه نداشتو دیدنه خب آره دیگه پولشو از کجا آوردی؟ اول خواستم از جیبت فردارم بعد گفتم شاید کار درستی نباشه بایشون گفتم با سورتاسوات بعدی پرداخت میکنیم تو هم زده به سر دختر جان نه به سرم نزده خب گروست من بود فکرم تم باید نوش نماشی نیستیش اینه گاب <تصفيق> با خب فکرم اگه عکاس و خبرنگار فضول این دور رو برا باشه بهتر اونا رو نبینه بایشون همشون پایین تو خیلی شبیه مهنازی میدنستی نه مهناز میگف شکل تو نه نه اصلا شکل من نیستی شبیه مهنازی چرا مهناز میگف نینی چشام این توه نیست ببین نشون بدن بید بید بیا بگید بیا را کروش رو به کنار آینه میبره و چشاشو نشون میده. چه خیلی نینی چشام شبیه همه من که شبایت نمیدیم دو به میزه سخونه بر میگرد. آخه تو دختر به این قشنگی به این خوبی به این خانومی شبیه منی مرسی خیلی هم شیکی ها دختر شهرستان نیستی آخه مهناز خیلی داشت که من همیشه مرتب باشم همه چیام هم یادم داد حتی واکس دادم هم بلدم میبینم آخه یا بر این خواد چهبر زندگی و مهناز برام دخت برام تعریف کرده دیگه چی ها برات یه yeah. امروز می مازمایش امروز که بعد به سر فیلم برداری نه فردا چند فردا بعد جلسه خیریه شرکت اتباقا این نامه هم از دشت رها کلی نامه است که شو بیرون می میده و می به کروش این رو از کجا بردیم دنبال شماییست تو به مارکت که می پیداشون کردم اینجا اونجا همه اشمال طرفداراته ببین که آلم هم کاده باز کی بهت اجازه داد به این رو دست بزنی؟ بازشون که نکردن البته اگه اجازه بدی بازشون هم میکنن جوابشونو بدم گناه دارن نمیدونم هر کاری دوست خیری بکن خیلی خوب. تو کار خیرم میکنی؟ پس چی؟ چی کردی؟ یه مدرسه کوچولوی جای خوشگل داره. فروش کلی زده شده و خوشحاله اما نگاه رها این کار رو بیمنی و کوچیک میدونه تو اینجوری و تو صورت کروش میخوشه. تو نمیتونی همه چی رو زیر سوال ببری فکر کنی من کیم قلب ندارم قلب دونم. تو مهناز رو دوست داشتی من فقط چونده ساله بود خب ولی اون تو رو دوست داشت هیچ فکری بعد از ماجر شما کجا رفت چه بلایی سر شما بس کن. فصلای حرفه ای پارماست کُرودی که نداره. تو رو نمیخوری؟ خوش تو بوتیک شیکی مشغول گفسرن با فروشنده هستی. رها با شو یه پالتوی سفید از بوتاق پروف کارج میشه. دل میشه. کاری به کار ما نداری. خوبه؟ به به، چقد تو میاد. چه قلی شما خوبی؟ یه چخ نزن مبارک. خوبی؟ تو چه حسرت میکنی دوستش داری؟ بگید آها. پول شما نداره. قرونه آقا. کش این چه شمی بری؟ مداخله نمی‌زنه به حساب جون این نفر استثنا خود کوروش است. تو مسیر برگشت طرفدارهای کوروش برای امضا میم پیشش و این بار کوروش قشوت‌تر جواب اونها رو میدهد سرخوش موزیک ماشینشه. اما ره ها انگار کمی معذبه هرچی دوستاری بزن. آه باری کلا دختره هم و سالتا همه شون چین تا میوزیک گوش میدن تو تو سن سالت نمیاد نه سلقه علی جون هم گوش میدن خوشم خوش هم کلا به علی جون خروش اینا آفتابیش رو به چش میزنه و, و یه اینا هم به رها می ده. ببین بهت میاد بالا امروز هم بخون ببین چی نوشته. مردار شیر میدونی تو دنیا دو جور آدم وجودتره اونایی که مردار دنیا آمدن اونایی که دوست داشتن دنیا می. ده. تو این چیزها اعتقاد داری؟ معلومه تو که برای آفتاب زدی یا برای اینکه کسی نشناسته؟ حسله ندارم هی با انگشت نشونم برم چاله دالمه زحمت این کسی که معروف به صفت اینکی میزم نشونسم بیل کن بابا این حرفا اونو بزن رو چشمت ببینم بهت میاد؟ تو هر ماه چقدر خرج لباس و اینک رو چیزا میکنم چه میدونم خیل یه میلیون دو میلیون یکی <تصفح> دو میلیون که پول خورده چه خرج چیزای دیگه میکنم منظور من چیزای دیگه هست دیگه مثلا چی آفید؟ که ظاهر نیست بلاخره چیزای دیگه هم هست تلنگوری انگار به کروش میخوره آره خب اصل فلسطی که پیش میاد سیگار می <تصفح> سیگارشو به لب میذاره اما رهاش رو میکنه به صحفه کردن <تصفح> من ناغولایی من که انوز روشن نکردم <تصفيق> <تصفيق> مرس نه قبول نیست تو خیلی داری به من زور میگی همه جوره تو بی ای به من چه مربوطه چطوری همچه حرفی میزنی من با اراده و پشکال خودم به اینجا که هستم رسیدم فکر کردی چی؟ اتمنی <تصفيق> ست در ست بگم بعدش نمیام تو گرد دلت میخواد به من میگی خب بگوی به ازر من تو به جایی نرسیدی زیاد حرف بزنی بینی می‌بینی زود میگی بچه‌ که با تأخیر منو ساکت کنی چرا تو نمیتونی جواب سوالای منو بدی حرف نزن گوش برای ادامه مناظره یه گوشه از بزرگا پارت می‌کنه آخه بچه‌جون تو چه میدونی شهرت واقعی یعنی چی چه میدونی وقت و بی وقت هست شب زنگ بخوان به زنگ بزنم بخوام به ادبراز علاقه کنم بگن دو دارم یعنی چی چه حالی پیدا می‌کنی وقت و بی بخ وقت از ازت امضا بگیر بری زن عکس اکس بکن. این دست بکش اون دست بکش توست چه میدونی اینا یعنی چی؟ زیر زره بین مردم بودن یعنی چی؟ خب میخواستی معروف نشی؟ اصلا بحث ما این نیست به نظر من تو هر کی باشی و هرچی باشی یه آدمی هستی که داره خودشو میکشه یادم آدم عصبی، بد اخلاق، بد رفتار بس کن نرستم بدت میاد آره دیگه حقیقت تلخه مگه نه آخه تو نصف سنده من نداری داری من هم عصیت میکنی خب اگه یه حرفی درست باشه چه فرقی میکنه اونو بزنه خب باشه قبول قبوله بابا اصلا کی تو بگه قبول آشتی گوبه از رو تو کنیم باید لطفا تو برگردم اول سرم داد میزنی بعد میگی دختر کوچولو بعدم میگی آشتی هیرم قبول آشتی بله لگه تکرار شد چی؟ سعی میکنیم نشه ها اگر راست میگی یه روز اراده کن سیگار نکش یه شرط و شروط برام؟ نگفتم کروش سیگارش رو پرت میکنه که نه. خیلی خب بابا من که تارا ست دفعه ترک کردم این یه بارم خوش سر هزارتان با شرط مندم که نمی کن اوه ریخت و پاش نکن بابا کدوم هزارتان نشون بده ببینم راهو یه هزاری هست که فش نشونه کروش نگه تو که پول نداری؟ نیکی ما روزم عباده پروش با لباس کارگری و گرمی میانسالی داره نقش بازی میکن آی مهندس من بدشان سیاه بردم نختی یادم بد بیاری میاره مدام پشت هم میاره اول زنم مرد بد برشکست شدم بعد مادرم مرد اونم حراج شد الانم بچم با تخت بیمارستانه خودم واسه یه وام کوچیک دارم به شما التماس میکنم چی؟ التماس کنا؟ نه نه، اونجا من التماس نکنم بهتر عوضش کنم. چرا؟ چیکار می‌کنی؟ می‌کنی تو دهن من. خب تماشاگر خوشش نمیاد من التماس کنم. برش من داریم میره سینما ها. شو چی هر خوشش میاد خوشش نمیاد. چون کاری که قراره بکنی بکن. پیشنهاد میدم عوضش کنی. چی عوض کنی جمله رو سناریو رو چه میدونم مگه شما سناریو رو قبلا نخوندی بهیمونزه که نیست خب عوضش کنی اتفاقا منزل حرف اولو تو سیدما سناریو میزنه اگه نوشته ا بعد بگی ا نوشته A باید بگی A از خودت هم از در بیاری میزمی؟ خب توتی بیار واسه بازی کنه بازیگر باز چی لرز شیعه بردی؟ کن تحتیلش کن جرسه بوده من رو با. با. خاموش کنیم این سیگه تا چایی برده برده خبا تحتیلش کنیم یه سیگه تا چایی برده برده یعنی چی؟ قصدش هم سیگاری به لب میذاره اما با اشاره رها اونو از لب برمیده زن کارگردان هم متوجه ایما و اشاره ره ها شده من طور ندیده بودم آخه من جدیدم به این گروه اضافه شدم پس خیلی مراقب خودت باش نگران نباشیم. به هر حال احتیاط کن گفتم که نگران نباشیم. آخه ما غروی عمر با هم بمونیم ما نامزد کردیم چی نامزد عزیزم، نامزد قرار به زودی ازدواج کنیم جده؟ بله آخه میدونین من با بقیه زنای زندگی کروش فرق دارم آه چه فرقی؟ فرقم اینه که شناخته خوبی ازش دار منشی سحنه میکنی دورتر سعی میکنه گوش بیسته و از این مکالمه سر در ببینین از نظر روان شناسی کروش تیپ جاه و خودشیفته است اینجور دعا معموله خودشون رو بالاتر از دیگران میدونن حسن این انتقاد ندارن از چابلوسی لذت میبرن و به طور کلی میشه گفت از چیزای دست نیفتنی خوششون میاد. خواهیم دید حالا نوبت خانم منشی صحنه است سلام بدی این رسمش نیست کردن نه؟ بلیت. چهار تا بازگر در پیت خوردن تو بازگاره اصیل ما این منو خسته میکن نظرت ببخشید آقا با کروش صحبت کردم جلسه رو بذاری از بچه ها برند بعد تحتیل کنم یعنی ده دفعه ما یه هرکی نو میزنم چشم بچه ها خسته نماشی نمیگی تحتیل تا فردا بردار بری نمکن خسته میزن میگه نمزدی کروشه همچه <تصفيق> هم آر خورداریم بیادیم روزه بچه ها برن آن این تحت در میارم هم کارهای رحا رو زیر نظر برد کروش سبرش رو از دست میده و میره به سمت رحا رحنا چی تو گوشت دیزدیز میکرد؟ بل اون بود به حرفهای که میزنی باور نداری که؟ افا کارگردانتون آخه تو از این مناسبات چی سرت میشه بچه؟ آره دیگه هر فرق تلخه اون دختر مجمع فیه چی میگفت؟ میخوانی خوبه؟ خیلی هم موجهش مصبت بود دیدم یه چیزی براش نوشتی چی نوشتی؟ خصوصی بود دوم داره بردی؟ با می خانم کچلوری کسی با ما با معرفی نکرد؟ رها هستم رها عظیمی بح بح چقدر تو شما سینماییه؟ مچکرم گفتیم اسمتون چی بود؟ رها عظیمی کاتش میکنی یا نه؟ کاش شما این حاضر جوابی رو جلوی دوربین داشتین. اگر فردا مردانشون اجازه میدادن ما یک تست برای بازیگری از شما میگیریم. ولی بله چه کنم؟ آقای زن باد ما کنم. چی میگی کوروش چند شما بفهمین تو ماشین بیشینی تمام میاری. به متشکرم از پیشنهادتون کنم؟ می بینیم نداشتند ولی میبینید. باشه. زن. شیراش خیلی شیرنازان پاتی او چه لوس سرمایه گذاری کرد؟ نام سرگرمی تو به چهره خود شما ثرما یا کنم؟ بیشتر چه کیا یاد میگیری به ناموس مردون احترام بذاری؟ نه بابا نه به از بین لوازم در هم و برهم صحنه رد میشه و به سیامک میرسه و بالاخره یه سیگار آتیش میزه فکر کنم تپشش چه دیه؟ کوروش رها طولهای برگشت است مردک شکنگاونده واسه من کشف استعداد میکنه. هم نمیکشه. چطور این سلسله سینمایی دیری؟ تخصیر من که اصلا تو رو هم دارم با خودم میارم سر کار اینجوری دیگه رفتار مناسب با محیط بلد این کرد پرتی به می دهنش میاد میگه مگه من به تو نگفتم سنگین رنگی میری یه گوشه وای میسی با هیچ هم حرفه میزنی ها این خور نزد اون آقایی چه کاره بعد می نکرد خودتا هم همه اینا بحانه هست که بگی اصابانی هست یه سیگار بکشی به جای داد زدن سر من مرد و سیگار رو تو بکش. درزم وقتی منی توی ماشین بروی سیگار میداد کروش نیشاش باز میشه و سیگارو به کناری پرد خلکم نگیره حالا به جبان اشتباهی که کردی منو به برک ساموشاب کنم سلام کروش رها میرن به یه لابراتو خوبید جمزم در خدمت هم فیلن که خدمت از ما هست این دفعی مهمون ما باشیم برسی مرسی خیلی جمعا متعلق به خودتون هم وقت میل داشیم به خانم پشیفی اگرم دیشون خانم من نیست. خواهرشون هستم بعد در میفهمیدم حالا کوروش و رها برای خرید به سوپرمارکت میرن دیگه گفتم من بیشتر شبیه تو هم اون آقای صندوق با چی گفت رها نگاه معنی داری به کروش میندس و کروش هم لبی گاز میگیره تو واقعا کی هستی؟ هرچی که فکر کنی تو خواستی منم اومده چی؟ ببین داستان ساده اداد چیز رو از تعی دلش فقط اون اتفاق واقعا براش پیش میاد. تو خواستی که یه دختر داشته باشی مم. نه اینکه خودت اینو خواسته باشی یا خواستی یکی تو زندگیت تغییر ایجاد کنه؟ نه تا کن به ج دیگه بگم. ببین من از صمیم قلب خواستم که تو پدرم باشی که با تو زندگی کنم خب چون جفتمون از سریم قلب خواستی شد دیگه؟ اگه یه روزی تو نخواه یا من نخوام خب پیش هم نیستی میدوگه کروش رها تو رستوران سنتی با هم خلوت کردن چیزه بریم بیرون قدم بزنیم آره اره به. رها جلو جلو قدم میزنه و کروش بی اراده به دنبالش میده اینه خیلی بازه از بچه که میاد اینه که من همیشه تنها بودم نه کسی حرفه منو می نه من حرفه کسیو همش مطلق و تختیر خب. مادرم منو به پدر زایده بود میدونی که همیشه فکر کردم اگه علی جون نبود من چی میشدم موازفه ای بود که کمکم بیکرد من کتاب بخونم درس بخونم میگفتی جوری خودم به خودم میتونم کمک کنم خروش رو حیمکیتی میشین خوشگل خانم فالت بگیرو نه مرسی علی با مهناس خوب بود خوشبخت بودن نمیدونم درمه مهربونی بود بود؟ نه نه هنوزم هست هن. ولی وقتی مهناز مرد من براش غریبه بودم میفهمی که میخوای فالت ببینم؟ چی؟ فالت ببینم؟ فالم میبینی؟ بابا توی یکی هنوز برنش نخفی که بده؟ رها کنار کروش میشینه و خالی با مداد به پیشونی میذاره و دست مالی کف دستش میذاره و میخواد تا کف دست کروش رو ببینه کارا چیه؟ بای کلا بای کلا این چیه؟ دست ده ده بر اینجا آه ویل کنی چی آخه؟ برای چی؟ چی دیگه؟ شد دخترت نمو هنوز که نمیدینی ولی من مستمعه نمید چی؟ بلاخره کروش راضی میشه تا رها فالشو بگیر خب چی رو اقبالت بلنده آه. دستت بهنده است پریشون سرگردون گم کرده ایداری، داری کار خودتو گم کردی پاک به دنیا آمد به روح و بدن از احترام نذاشت اما پاک از دنیا میری به بکو برات خوبه با آدم مهربون باش و خیلی زور پلاس غم غسته رو جمع میکنی و فش شادی پر میکنی صاحبی شیسته بچه میشی <تصفح> چه خباره هفت رزن فقط گوش کن باید مارای تیره دلتو بخواه که تیره بسپاری. حالا رفته رفته هر قایلها براش جدی هر میشه باید با حسل خرار رو بیرم بکشی باید چشکنه دوشن ساقی به سمت در میره که متوجه ورده کروش میشه و سعی خودش خودشو سرگرم چیز کنه آشوب لحظه ها همین جنب و عمل های ساعت دیگه نشه. تو که هستا. جوونی هم همراه رها و کوروشه که تو آوردن خرید ها همراهیشون میکنه. امیدوارم فراموش نکرده باشه که هنوز کلید این خونه رو دارم. همه دیگه نیستن ای زن. ارسل. باشه. لحظه آقای کافدار. میگم مثلا با کافدار دوست داری؟ اساسا من هر موجودی که حرف نمی زنه رو دوست دارم. سلام خانم کچود فکر نمی کردم این راحتی ببینم اه. سلام خوبی آلاللل چقدر خرید کردی نام مبارک پاشه زف عهدی نمی دونید چیه واسه خود همجوری شعر نگو خبر ها زود می پیچه می خواستم با چشمای خودم بلیم درزه موشی تلفنی تو چکم پره برای احزاریه پرست ساقی قرسی می‌ندازه بالا. ساقی برگه احضاریه رو به صورت کوروش می‌زنه و به سمت در میده ببینم موفق شدی کلید خونه رو ازش بگیری؟ هنوز که نه. ولی امیدوارم فردا یه سری برام درست کنه. باشه نیست زحمت نکش بگیر. ساقی کلیدها رو به سمت رها پرت می‌کنه اما کوروش غرق فکر و خیال. اوکی باشه تو رمسی سگ از خونش بندازه بیرون. بای. کوروش نگاهی به زاریه می‌ندازه. بیا کمک کن دیگه پس یه جوری هزاریه میگیری که تاریخش گذشته باشه دارم آزار کروش به سمت قرصهایی داخل یخشان میره هم قرص بخورم بگیرم بخوام قرص نخور فقط هم شار من برات ساز میزنم بخوام باشه بخاطر خاطر منه درست بکش اینجا گیتار کنی گیتار نیس اون گیتار دیوانه از بچگی ما ویالون بزرگ شد اینو دیر سینما سفر نمی کنی معلومه کی می گه اصلا حرف حساب چیه تو براز بیلون رو به دست میگیره و رها هم ساز رو بر تا آرامش رو به کروش هدیه کنه آرامش تمام وجود کروش رو فرا گرفته کشایی کروش تر میشه تلفون به صدا در میاد و کوروش از خواب میپره. آله. راه، راه. باشه رو کاناپه بگی بخواب. رها جای کوروش میخوابه و کروش لها فیروش میکشه. خوابیدن تو جای گم خوب. رها میز صبحانه رو پر عکس ها و نامه های کروش کرده این ببین سلام آقای زن من یک سرواز وظیفه هستم که در شیر خدمت میکنم شما برای من سمبول آدم خوشبخت هستم هم. و همه چی دارید پول، جذابیت، شهرت من آرزو دارم آقای زن کورش نگاهی به بیرون میدازه واظع نمیخونن؟ بله. بس نک خودم حاضر اندر فريدنم. دللری بعاله. بابا ولا ما تو. ما به همراه ماموری پشت در. هیچ میخوان. طورش لباساشو از تراس فرار راهودار رو باز میکنو، معمولا شرکها فوری خونه میشه سلامی. سلام خانم. بله وقتتون بخیر خب. راستی زده نیست. ای خورشتن تشریف دادن؟ نه خیلی نیست. بفرم تشریف دادم داره که نیستن. صبح سوغافان سر فیم سکا ساکت رو میگم. دیشب تو تو خودم داد کیزی کردیم. تو خونه هست پس چطوری من داخل خونه رو ببینم ما گرفتم باهاشون. نه. مما. باشه. من اگه مما. ببینم میگم بهشون کوروش باز هم به مدر پناه نه کروش جونه سلام داره خدمت رو با شما امروز که فکر نیم آه کنیم روز داری من چه مرگمه چیه سر صوبی تو سر چقدر داری؟ هیچی دنچی تلاهات بازم پول لازم دارم خب میفهمی؟ که کار کنی؟ کب کن به دفقات دوست کنم الان چه وقت این حرفاست؟ اون شهلای دیوانه حکم جلبامو دادن. مهمور کنم تلفن چات. اعصابم خیلی عصبانیه. چند روز منتظرته. به غلط کرده منتظرمه. دفعه میخوام نمیخوام ریخت نحسش رو ببینم. ازش حال هم نمیخوره. جدی؟ اون وقتی که برای لباسونه به نامت میگاد، حالت با هم نمیخورد؟ نیست، شما خیلی ناراضی بودی؟ اصلا حالا هرچی. حوصله دیدن هیچ کدومتونو ندارم. میخوام خودم از شر همه مگاز پگسای زندگیم راحت کنم خلاص. فهمیدی؟ مادر میزنه زیر گوش و کرش. مدر به پول نقد و چند جبه طلا برمی‌گردد. این منو پول نقده. اینم طلاها. حدود 20 میلیون میشه. ببر همونجا که خریدم بهتر از دست میداره ترسا دنبالم اومده باشه. زحمت نقد کردنش با خودته. جبران می‌کنم. معذرت. اینکی شدی؟ چه عجب برای از سال دیتی. دیدی؟ رها مشغول جواب دادن به نام هاست طریقان بکسه آلو رها رها گوشی و بردار بله اله گوش کن رها برو تو اتاق هم کماده در سمت چپیشو باز کن یه کت چرم مشکیه تو هنجاش... جیب اینجاش جیب بالایی شکشیدیده که در بردار کماده وسط یه صندوقه درشو باز کن هرچی دسته چه کن تراغل و پول و نرده برده بیار گوشیم جا گذاشته برده بیا به این آدستی که به بپکس دنباله تا باشه هنوز شنخرهای خروش پشت در تو فیابون منتظمه تیلان بکسی کروش تینا هستم گوش رو بردار هستی شب رسیدم عزیزم بیبی چه ببخشید من منزل آقای زند گرفتم بله شما؟ من یکی از دوستانشون هستم شما؟ من همسرشون هستم همسرش؟ شوخی می کنید شوخی شه خانم چطوری؟ خب ازدواج کردیم دیگه چطور نداره؟ ازدواج؟ چه وقته؟ یه ماه یک ماه من همش پنی هفته ایران نبودم خونه هست؟ نه نیتونم بیام اونجا دخته نگاهی به گل و کادایی که برای کروش گرفته میدازه سلام من تینا سلام روا هستم خوشبختم خوشبختم میتونم بیام تو <تصفيق> شما ماشین داری خواهد تینا ماشین دارم بله میتونم خواهش من تو خونه ایما در شهرم برسونید چه هم بالاتره آخه من با کروش خار دارم گفتم که نیست یه طور حرف میزنید یه من بای کروشی که نکیف کادش رو گوشه پرت میکنه و همراه لحاظ سوار ماشین میشه. رها با این دودی که به چشم زده کاملا غیر قابل شناسایی شده و از جلوی خلق کارها فرار میکنه همه چی آوردی؟ آره آورد این چه وزیر؟ خب استطار کردم دیگه یه مهمور جوه در خونه بود با تینا اومدی؟ آره آخه کی اومده؟ یه انقدر دختر خوب و ماهیه که نمیده همیشه فکر میکرم هم اگه بخوام یه هم بگیرم تینا رو میگیرم حالا بیشتر باشش نمیشه. الو سلام عزیزم بسیدم بخیر کی اومدید؟ تو مربوط نیست مزهمم نشد درو الو تینا ده ها متوجه شدش اشتباه کردی چجا؟ قد کرد ها. چیزی پیش اومده بود؟ حسن ناراضی ده فکر کرده. می‌خوش هرچی بگی براش توضیح بده. شاه با تماس کروش خوشحال. آلا کروش. شما چه غلطی داری میکنی تو؟ درست صحبت کن. ساکت بابا. چکام بفرست پولت آزره. نه. به به حمی سادگی. شاه یا میری شکایت تو پس یا بلایی سرت میارم. این با من حرف نزن کروش. من هرجوی دلم بخواد با تو حرف می‌زنم. لیاقتت همینه. تو عوض شدی خیلی عوض شدی آره عوض شدم مثلا عوضی شدم نمیخوام نه تو رو نه پول تو نه ماشین تو هیچ چی نمیخوام بیا هر چی دادی بردا ببر خسته شدم از این زندگی خالی و تکراری از این زندگی بی اش. از این قربون های علکی که تاش میرسه به کلانتری باشه باشه هر چی تو بگی همونه فقط تو بیا بیا اینجا با هم حرف بزنیم اب بشارین یشخالا راستام کم کن همین الان هم میگم برگردم فقط تو بیا همین حالا الان نمیتونم بیام گرفتارم کار دارم وقت بیرم خواست میام چی شد بالاخره؟ بلن شهرش خلاص شدیم بزن بریم یه حوایی بخوریم هستی میریم آزمایش نه آزمایش هموز نه حاصله نه فرادان روز خود هستم روز میریم دردر کروش و رها رو تخت یه کافهی سنتی تو کوخبایه نشستن و رها مشغول عکس آخ سینن رو سوزه مالی سیگاه رو چند روزن کشی درست میشه هزارتان ما چی شده رها دست که به کیف میبره و هزار رو در میاره و کروش سرخوش این هزارتان آه کروش دادا بیلدان میخوا یه میدیو آبدان میخوا یه فخته البته پخته پخته ماله من هم کنی من جزغاله دوست دارم ماله من هم جزغاله شکن ای گفت این چشایی منه یا چشایی تو چی میخوایی به من بگی باهوش نه بابا دیگه تجالت نده نه, نه جدیه بگم تو دختر باهوش و دوست داشتنی نه خوبی هستی بگم مردی تو دنیا پیدا بشه که میراقت تو رو خستر آره یکی از این بابای خطرناک چیه فکر کنه میخواد منو تو سوراخ بندازی داش عکس گروه رو میشناسه و میرسن تو آقا آقا مینجا سلام آقا کوروش هرث ادب خیلی مخلصی چی میخوای تو از من سایه به سایه دنبال من راه میافتی عکس میگیری چی میخوای چرا زندگی نمیذاری واسه من تو تو واسه طبیعت عکس میگیری واقعا زنن این عکسها طبیعت تو یه دوربین فقط عکسای کوروشو راه واسه این طبیعت می‌دونم. تو خدا کلی بخاطر حالا تو در یه بار دیگه. یه بار دیگه دور بره به میکشم ببینم. من. تو چی که رو بغل میکنه تو عکس یادگاری بگیره می‌خواد. زنده شف شده و کروش رها به خونه برمیفرد تو خونه من باید دارم سراغ شهلا باشه بارو موزن خوش بکرد ازی قولت یادت نره باشه قول میدم کلید بادم داره. کروش وارده خونه یه شهلا میشه بلا بردم به چو اصلا حوصله تو ندارم پیش کنی دستی که نامک نداره بشوار چرا اینجوری می‌کنی کوروش مگه من به تو چه کاری کردم که با من این کارو میکنی؟ چی چیکار چی کردی غیرت می‌دونی که همیشه ناهاتو کشیدم قرضاتو دادم سعی کردم همه چیز اونجوری که تو می‌خوای باشه نه نه فرمانکرش نه نه باز چرا تو سخته میدونی؟ می‌دونی حوصله ندارم چرا حوصله کن این یکی رو به من بدهکاری اصلا من همیشه به تو بدهکارم بعد به تولد به تو بدهکارم اومدم حسابامو صاف کنم برم چه می‌گی چرا کور شانه داشت درست پیش میمرا حتی من تسنیم داشتم که <تصفيق> با خب من ازدواج کنی کو آره دیگه آره خیال باتل. میدونی تو چند سال از ازم بزرگتری من من عاشقتم اش این چیزا سرش نمیشه من جنگ کاریه باجان با که شد میگه عشق کاره است چطور ازم جدا خونه عوض بالا چی پول اولی سرمایه کار تو رو به داد چی تو به سفر می مختن و معروفت کن چی چه شنو تمام کتاب اصالیای تو من آره چون عاشق بودم اصلا حالا چیز شده یاو برت چشه اون دختره کیه که باید ناوزد به تو مربوط نیست نیدونی می میتونم به دو شماره دو آقشو به دو بگه کی باشه آه خروش از خوره در میره و رخ برخ میشه با شهلا نه موضوع خیلی جدیه. خیلی چدیتر از این چیزی که تو فکرش میکنی. باشه برو ولی مطمئن باشه یه روز خودت مثل دفاعی که بر میگردی تو این دنیا هیچ کس برای تو شهلا نمیشه چشمم کود دردم در باشه تعمل میکنم چون آشقم پانو لیدی خانون چی بگم من اگه اکنون این لحظه همین حالا به تو بگم این عشق مزهرف و نمیخوام چی وقتا بگم بابا خسته شدم بفر خسته شدم از این زندگی لعنتی بابا زندگی تحبیه داشته باشه مثل همه هم خودم باشم یادمی معمولی هر چیز دادی بگیم دست رو سرم بردار باشه باشه هر چی تو بگو، هر چی تو بگی خوب. پس بیه که میخوام برم شهر من تو رو برای طلبان اونجا نکشونم پولاتو بردار اینم چکم شهر ها چکا حکم جلب رو پاره می کنه راضی شدی باور کن موضوع که تو فکر می کنی می سید کروش سیگاریاتش می هیچی نکن می دونم هیچی نکن نمی خوام فقط بده باقی تو خدا یه این شب حالمو نگیر بذار من ازت درست خداحافظی میکنم، باشه. الان اینو به من می‌دی. دستاش می‌درزه. به خدا حافظی تمیده. راهم مشغول نامه هاست که کوروش وارد خونه میشه. اما خراب و خسته و داغ. بله. دیگه قمانکت کنه. یكان، ورتنا. حالش طبیعی نیست. نگاه میکنی رها وسبی نگران حال کوروش رها لطف کرد. من هر وقت دلام میخواد غلامم اشکنه یک استمر بود خواستم بدون حالا فهمیدی؟ بزن به چک بیگ بخواهد رها عقب عقب میره و کروش اونو با تهدید دنبال میکنه این مزخرفات رفعه تو چه چی بود رفتی به همه گفتی؟ نه؟ فکره کی هستی تو؟ کی هستی که باید به من بگی چی کار کنم چی کار نکنم؟ تو علف بچه آمدی زندگی من عرض کنی؟ مهربونی چوب تو به چند خونی می دو همه چ ک؟ ها؟ من حستره خود هم ندارم. حالا از خود هم میخواین برو بگه بر می؟ کوروش در برای رها باز از زندگی من برو بینان گم شوید چی نکن؟ چیزی ن که بعدا نش رو ان کنی؟ من منم دوباره جفت اون تنهاها میشه رو بیرون و برا خدا رو میون می یوانی برمیدارست آب بخوره اما لیوان تو دستش می و دستش غرق به خون میشه <تصفيق> <تصفيق> خب با تمام تلاش سعی میکنه به کروش کمک کنه اما کروش فقط تصویر تاری از رها رو میتونه درم کنه مادر پرده اتاق رو کنار میزنه کروش تو خونه خودشو خوابیده روی تخت با دست بانداش شده کروش کروش جان مابر باش مادر لیبان آبی جلوی کروش میگیره ولی کروش از رخت خوابش میزنه بیرون اینجا چیکار کار من چه میدونم؟ کی منو برده اتاقم؟ منظور چیه؟ منو بردمه دیگه راه ها کجاست؟ دیشب شما تلفن آدرس من داره بود مسئله درمانگاه دیشب چه اتفاقی افتاده بود دیشب دیشب پل خونه رو میگرده اما خبری از رحا نیست راه رحا, رحا پالتا و جعبه ی موسیقیشو گذاشته و خودش رفته راه روش جبره به دست میگیره و با بغزی فرو خورده تو اتاق میگرده رها؟ دیگه نمید دیگه نمی خیلی خوب حالا بر میگرده نه دیگه بر نمید دیگه نمی اون گندی که من دیشب زدم دیگه نمیاد من اون دختره میخوام من اون دختره دوست دارم اون دختره من پاری تنه من آش حالا خوب بود ولی من احمد من پیشوه بهش گفتم من گمشه گفتم من گمشه کروشیلای بزرگترین تصفیرش که نصف شده به دیوار نیست و تصویرشو پاره میکنه و خورد شده گوشهی میشه کروش به لابراتوار میده و لابراتوار میده اکسای رها دنبال چیزی میگرده اما به جز که معلوم نیست برای لحاظت یا خودش نشون دیگه ای از رفاق پیدا میکنی حتی به سراغ عکاسی گروه فیلم برداریم فقط همین؟ شما خودتون همه اکس ها رو کردید آقای زند حالا شما نگاه کنشد فقط یه اکس پاک نشده باشه ها؟ واقعا اگر بود که تختیم به میکردم. متاسفم. خواهش میکنم خواهش. کوروش به خونه خانم منشی صحنه رفته تا ردی از رها پیدا کنه. اون روز رها یه چیزی براتون توی دفترتون یادداشت کرد تلفنی، آدرسی، چیزی بود. اون روز با خانم درباره‌ی آدمای خودخا هارو خود شیفته داشتن. برای اون جالب بود ازشون خواهش کردم بنویسن. می‌خوام برم بیارم ببینم. نه نه بابا. اونم الان میاد. بفرمایید تو. کوروش لباس نقش رو به کرد و صورتش غرق و پر احساس مشغول بازی غلط کرد آقای مهندس اشتباه کردم من اون پوله از صندوق برداشتم ولی به خدا نیتم قرض بود چاره دیگه ای نداشتم به چه کارم چه کارم افتادم آقای مهندس بچه همه تخته میبارستان منتظره تا پول عملشو جور کنم اگه نتونم این کارو بکنم میگیر آقای مهندس همه متأسف شدن اگه یکی هم بره دیگه هیچ اویدی ندارم هیچی ندارم زرم رفت زندگیم رفت همه چی رفت شما بزرگ باری کنین رضایت بنین به خدا برمیگردونم سر جایی من تو حالا تو زندگیم یه لغمه حروم نخوردم نزارین دختر را از دست بره ازتون خواهش میکنم بدون, بدون التباس میکنم نزارین دختر را از دست بره من باقید عمیدو میخوی باقید دو اخو درمو میخوی خلافات قاد فیلی خوب بود فیلی خوب بود با رو دقدر قلی و عرام خیلی بود کروش دلوی آینه میزگیری نشسته و ذهنش مشغوله سیامک به کروش نزدیک میشه و دستی رویشونش نزده سفر خوبی داشته بشه دعا کن به سیامک خیلیش میخوند نگره نمش کروشش باشو پاک میکنم برس لحظه راهاش نمیدار کوروش با ماشینش راهی سفر میشه خروشندهی لفاظم موسیقی بی اطلاع از چیزیه که کروش برسه گفتی نفیه عظیمی؟ بله نه چنین کسی به یاد نمیگرم ببینید اقای زمت من تقریباً تمام لوازنده شهر رو میشناسم تک میکنم با دیست تو متاسفانه هچ پرونده این چند سال فریدون شهر رو نگاه کردم شگیردی به اسم رحا عزیمی نداری چا مطفیق؟ حتی از یه خانم خیاط هم نیفرست آدم های به این اسم نمی اینجا شهر کوچیکه. همه همدیگه رو میشناسم ولی خیاتی به نام محناس یادم نمیاد. تیامت لسه تلفون های منزل کروش رو بهش نشون میده پینته تلفون هات بیان کدومش بشک الو. هلو آوه سلام شفه فا باش بدانم عظیمات اندا کارجرز برودا آدرسی نو رام ببنم اسمش رها عزیمیه. با کارفونه شما تماس کرده شما کارگری بسم عزیمی داشتین یا دارین؟ عزیمی نه نه نه نه نه نه نه کروش اکس چشمی رو نشونه کارگرهای کارفونه قاله به محله رستوران صنتی پایکو پایه می رو رنگ فکر ها جقاله کوروش پشت چراغ ایستاده ای که دو تا بچه خیابونین شیشه های ماشینشو میزنن و کروش یاد خاطری از رها میفته نه, نه فقط از فکر اسمم چیه؟ اسمم خورشه مریکی تلا اومد حالا میخوریم نه الان باز کن نگی تو آدم به الان باز کن بریم نه نه نه بای سفه خورم بد بابا میخورن نگه کی میخورد ازشون بگیریم اطمئن نمیگه اران کلوفون دورو برست در اونها میگم این چه خیلی سخته. شیشه رو پایین میده و راه سلام. سلام. سلام. اون روز با یه دخترخونه اومدم اینجا. بله. شما دختر میشستی؟ بله، بله. می بله میدونی ببین کجاست؟ نه، ولی یه مدتش شارو هم پای میخورم. این آره، فرشته بود. آقا نفشه نه میخواهیم ما آب میبو او کیک من تو ماشین آبی میبو او کیک ندارم ولی میتونیم بریم یه جای نهار بخوریم ها اونم خیزر خود را این که خواه شد پروش بچه ها را سوار ماشین مکرد پروش و مادرش خونه یه از خونه های شلوق پاییشنش خونه خوشحالن و به دور کوروش حلقه میزنن این همون خونه بچگی های کروشن تابان مشغول نباختن مشغول نباختن بازم فرشته ها رو دیدی؟ این دفعه فقط یه چند تایی بس انوز امیدی هست چی کار باید بکنم؟ بسرم نشونه ها رو دنبال کن از همه خونه شروع کن مهناز مهناز؟ اوه. خیلی سال پیش از اینجا رفت رفت یه محله دیگه کنم که توی مونیده یه اتاق داشت بله بایدن بایدن باید خوشحالیه منه بتونم بهتون کمک کنم اما میدونی یه ده سالی هست از اینجا رفتن خیلیتی پربرشگاه شده بود دخترش چی؟ دخترش؟ به دو ماهش بود که پشت در پرورشگاه پیداش کردیم یه نامم باش بود که اسمش روش نوشته بود گمونم صدرش نخواسته بودش یا یه همچی چیزایی کروش اکس چشم رحا رو نشونه مدیر پرورشگاه ولی این اکس رحاست گفت دختر منو مهناز. نه آقای زند این فرشته. هست و اگه گفته دختر شماست ختمان برای کارش دلیل داشته اما من روی مدارک و شواهدی که دارم. خیلی بعید میدونم که دختر شما بوده باشه ولی من مطمئنم شاید مهناز خودش رها رو آورده اینجا بعد در اینکه به رها نزدیک باشه اومده اینجا کار خیلیتی دارد شاید من قطعا نمیتونم بگم که این دختر شما هست یا نه میدونین یه پرنده رها بود آره شاید واقعا رها بهترین اسمی بود که میتونست داشته باشه موجود جالبی بود زمینی نبود مثل نسیم مثل باد آره، واقعا مثل با حالا کجاست؟ کجاست؟ شما که ماشالله خودتون اونرمند خونه باد کجاست؟ هیچ این مهناز مرد هم دیگه بر نگشت اینجا اون طرف این طرف شنیدم که سر چهار روها گل میفروشه دست فروشی میکنه فال میگیره خیلی سعی کردم پیداش کنم ولی متاسفانه نشد میزونی دقای زن بایی وقتا فکر کنم که از این بچه پدر مادر درست حسابی داشت چی میشد گاهی مثل یه بچه گاهی مثل یه مادر اون نفعش پروش راهی یه جاده خاکی تو دل کبیر میشه شاید دنبال فرشتهی که گم کرده نه این من نیست منی که بذار همه ببینم آسمونم بیر فروزه بذار مردم بدونم که به پایان رادیو فیلم سوپر رسید. امیدوارم که از شنیدن این رادیو فیلم از ما یعنی فرشاد سردبی رو تهیه کننده، علی حاجی نوروزی صدا بردار و من آرمان قفاریان نویسنده و راوی راضی بوده باشید. ها تو دنیا زیاد نیستن. پیش هر کسی هم نمیان. ولی اگر یه رو پیدا کردی، هیچ وقت نزار بره. چون آسمون دلت واسه همیشه ابر میشه. شاید چون همین الان پشتت خوب نگاه کن آیا. خوب نگاه خوش باشین خداحافظ